انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت ها قبل احساس می شد که ترجمه جدیدی از عهد جدید یا انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز میباشد. زیرا ترجمهی که فعلا مورد استفاده قرار دارد، ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن ادهی از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردن هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشن به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانی آن بحرمند گردند برای ترجمه عتیق به فارسی جدید نیز طرحهایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و سمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. انجیل متا فصل اول شجر نامه ایسای مسیح پسر داوود، پسر ابراهیم ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود و یهودا پدر فارس و زاره از تامار و فارس پدر حسون و حسون پدر ارام و ارام پدر امینوداب، و امینوداب پدر نحشون، و نحشون پدر شلمون، و شلمون پدر بوعز از راهاب و بوعز پدر عباید از رود، و عباید پدر یسا، و یسا پدر داوود پادشاه بود. داوود پدر سلیمان بود از زوجه اوریا، و سلیمان پدر رحب آم و رحب آم پدر عبیها و عبیها پدر آسا و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام و یورام پدر اوزیا و اوزیا پدر یوتام و یوتام پدر احاز و احاز پدر هزقیه و هزقيا پدر مناسا. و مناسا پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود و یوشیاه پدر یکونیا و برادران او بود در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند پس از تبعید یهودیان به بابل یکونیا پدر سالتیل شد و سالتیل پدر زرو بابل، و بابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر آزور. و آزور پدر سادوق و سادوق پدر یاکین و یاکین پدر ایلیهود و ایلیهود پدر ایلازر و ایلازر پدر متان و متان پدر یعقوب. و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم ایسای ملقب به مسیح را به دنیا آورد. به این ترتیب از ابراهیم تا داوود چهارده نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل چهارده نسل و زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل است. تولد ایسای مسیح چنین بود مریم مادر او که به عقد یوسف در آمده بود قبل از آن که به خانه شوهر برود به وسیله روح القدس آبستن شد یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا کند تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت ای یوسف پسر داوود از بردن مریم به خانه خود نترس زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را ایسا خواهی نامید زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد با آبستن شده پسری خواهد زایی که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد